کار ما میه داره کتاب نسبت بدن بید بعضا گفتن اینها روایت بعضا هم گفتن کتاب مدونه ولی اونی که به کار میاد و در حوزه کار ماست چهار کتاب که هر چهار های اینها هم به نوعی بنیاد و ابتكاره. زید من علی کماقیل یک قرائت ویژه دارد که این قرائت همیشه مورد توجه بوده و ظاهراً اون کتاب القرائه زید تا قرن هشت در اختیار بعضی از علما بوده که ما این هفته اشاره کردیم گفته می شود که ابو حیان انگلوسی او رو در اختیار داشته و رضا بر پایه او یک قرائتی درباره زید نوشته که حالا به دست ما نرسیده بعضا هم می نه این از همون قرن سه چهار به بعد رد پا نداره و سالهای بعد هر چه از قرائت زید سخن رفته معقل های مونده در منابع و مسادر اخیرا یک فاضلی که من دیشب یه مرترا یادم اومد شاید ساعت سه بود سمونی بود که پا شدم بگید که یادم آمد یک کتابی دارم من با عنوان قرارت و زیزه بن که الان نگم نرم دنبالش دیگه یادم رفتم و از پایین کتاب خونه آوردم و همون وقت شب تورق کردم همش رو تقریبا اون هم نظرش همین بود که زید کتاب و قرارش از میان وقته و اون چیزی که ازش نقیل میشود منغولات از منابع نهایت باید توجه داشته باشید که در کل قبلان هم اشاره کردیم قرائت همه قرائت نیست. بعضی از اینها که به عنوان قرائت به بعضی از کتب نسبت داده می شود. اگر تغییر کلمه باشه غالبا تفسیره اسمشه قرارت بوداشتم به خاطر یه جهتی شما حتما میدانید که از جمله بونه های تفسیر که بسیار هم با اهمیت تفسیر موضوعی که علامه تبا تبایی رحمت الله علیه میفرمایند که اساسا تفسیر قرآن و قرآن آموزه اهل بیته مقفول منده بود من زنده کردن تفسیر موضوعی اولین پایش تفسیر قرآن به یعنی اگر کسی معتقده به تفسیر قرآن به نباشد عملا تفسیر موضوعی هم لغ خواهد شد حتی فضلای اهل سنت که اخیرا درباره تفسیر موضوعی سخن گفتن اونها هم گفتن که پایه و سنگ زیرین این نگاه رو در تفسیر قرآن مجید علیه ابن نبیطاره علیه السلام گذاشته است حالا از فرزندان بزرگوار سخن گفتن که غالبا بخاطر این که اعتماد یا اعتقاد، اعتقاد به علمان امامت نه به عنوان جایگاه بلند دانش که حقیقتش شنفونه معتقده زید گذار تفسیر موضوعی هم هست شما میدانید که همین الان هم در میان بعضی از آلمان ما اعتقاد و عدم اعتقاد به تفسیر موضوعی بحثه گرد که به نظر من می رسد دست زایی دیگه اینا استرات میکنن میگن خب اگر خدا بنابوده که موضوعیت را دوست داشته باشه خودش تفسیره باشه موضوع قرآن موضوعی میکرد دیگه آیاتو توحیل شه یه جا نبوتش آیاتو نبوت یه جا میذاشت یه مقدمه برش برش برش برش برش برش خدا تعبیرش از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره باره این قرآن معذبت الله این القرانه الله این قرآن سفره خورد پس ازش بهره گیرید مست در حد حق حتی که توان در خودتون بجاز بدید و سفره رنگارنگه در تمدن شما یعنی تمدن اسلامی در یک روزگاری اصلا دانشی به نام صفر آرایی بود یعنی در محافل و مجالس و چنانی، همون الان حالا بعد از اینا که هم. اون هم می دونن مجلس گردانند اونا میدونن مجلس چجوری داره کنه یعنی اینجوری نبود که هر دلشون بخواد مثلا دوغو بگذارن، هر دلشون بخواد آب رو بزنن، هر دلشون بخواد سبزی رو بگذارن صفر آرایی خودش دانش بود ما یه وقتی رفت سوریه رفتیم سفارت این سفیر ما تو زمان ما های بود این سال، هفته سال این از زمان شاه توی سفارت خونه پذیرایی کننده شما باید عدا و رو را می‌دیدید و بعد ادب و نصب این وقتی که می‌رسید سینی را که گیری که چای برداری تا وقتی که شما چای را برداشته بودید نواش بسته بود باز این آی اختری می من یک مرتبه از راز این سوطن را کردم گفت خب ما وقتی که می‌آمدیم به سفارتخونه قبلا دو ماه برای ما کلاس می‌ذاشتن برای چونه می‌پذیرای. خود تو هر تبار می‌گویی، میکنه می‌گویی همه چیز می‌ریزتون، چای می‌خوام می‌ذار گیرو بنده خدا. این خودش یک نه. حالا این آقایون مثلا از جمله همین آقای دکتر سید محمد باقر اخوتچی حفظه الله که فندازار علوم قران در دانشگاه است، به شدت مخالف تفسیر و موضوعی هستند. این اصلا تفسیر موضوعی نباید بشه. در اولین کنگره‌ی قرآن که او زمان در تشکیلات اعلی این قل برگزار می میشد، آی سبحانی هم که ادعا میکنن امبولان گزار تفسیر موضوعی به فارسی در ایرانه ایشون مخالفت میکردن، ایشون موافقت میکردن. ولی من فکر میکنم که این که میگم از جهت زاویه این است که شما دو تا جهتگیری دارید. یک مرتبه جهتگیری تعلیمی عام دارید. اونجا همگیری باشه بهتره یعنی شما در مسجدتون مثلا حضرت ها یعنی ما امام جماعت بخواد بین دو تا نمازش تفسیر بگه یا یه بحثی من میخوام برای عموم دانشجویان که مال همه رشته ها هستن تفسیر ببینید یا برای اندساهی در اینجا تفسیر ببینید این برای ایجاد جاذبه و خسته نشدن و دلها را به لرغه در آوردن و گاهی شاد کردن و گاهی تمنه شدن این یوریش اما یه مرتبه میخوایید که اون پیام واقعی حقیدی در موضوعات رو از قرآن استخراج کنیم و این عرض نکنید هیچ جا چکارید جز تفسیر موضوعی نداریم. شما کهی میتوانید بگید که درباره توحید صفات حرف خدا اینه اون زمانی که همه آیات مربوط به صفات توحید صفات رو یه جا دیده باشید این ماجرا با اون ماجره دوتا و لذا جدال درش هم بیفایده است عرض می‌کنم ریشه ها بود ولی شما ها اوائل قرن چهارده یا حتی اواسط قرن چهارده دیگه از تفسیر موضوعی خبر نداری می شود با قاطعیت ادعا کرد که واقعا در کارسی آهی صبحانی اولین تفسیر موضوعی رو نوشته و در عربی شیخ محمود شلتوت اولین تفسیر موضوعی رو نوشته اما ریشه این جرایان رو در سیره زید ابن عبی رضوان الله تعالی علیه ببینید که این خیلی قابل توجه است. خب شما در سوتی دیدی و به صورت معاقه هم می بینید که اولین نگاشته‌های های شکل گرفته در آستانه قرآن قریب قرآن یعنی واژهای دشوار یا زید بنیانگذار غریب القران هم هست حالا با یک کمی مثلا تسامخ که ابان باشه یا مثلا زید بن علی باشه پس زید در مبالان داره هم در آئه خیلی جالبه ما در تاریخ تفسیر هم هم در انبرش گفتیم که علمای ما اصلا عادت نباشتن تاریخ علم رو بدیسن چی اوزانی فرق نبود؟ علما همیشه تاریخ علما رو بدیشن ولذا شما طبقات و مفسرین دارید ولی علم و تفسیر و تاریخ و تفسیر ندارید طبقات المعتذله دارید و تاریخ اعتضال طبقات الفقه ها دارید ولی تاریخ فقه این بحث ها مونه قرن اخیره یعنی بحث از تاریخ علم مونه قرن اخیره و ما تحت تأثیر خواهرشناس این کار کردیم یعنی اول کشورهای عربی و بعد ما به قدرت و جرعت باید بگید که شما در بحث تاریخ علم مدیون این حضرات هستید حالا هر چی میخوان باشه در تاریخ تفسیرم اولی رونا اونا نوشتن در تاریخ حدیثم اولی رونا اونا نوشتن در تاریخ کلام هم اولی رونا اونا نوشتن حالا با رگ تو کفش و با لگت نوشتن یعنی بالاخره اونا نوشتن اون وقت بعد فزلهای عرب نمیشتن که سنی ان و ما هم از اونها تقدیم کردیم تاختار تاریخ تفسیری که ما نوشتیم بهترینش که مال آقای معرفته و شروعه بهترینش که مالی این افاظر دیگه هست همه ماکت و چارچوب و ساختار اون پجورش اهل سنته ولی ظاید جای بمست به شما در تفسیر و مفسرون آقای معرفت هم رد پای زیدونه اون آقای زهبی نناشتن ایشون هم التفسیر و المفسرون فیساو بهل قشیب یعنی در جامعه نو اینگار همون کتاب زهبی رو بازسازی کردن ایشان خرط پرسش ها ریختن بیرون یک کمیان فکر شیعی ریختن توش شد التفسیر و المفسرون از اول مثلا اون گفته بود که تفسیر دوره پیامر دوره صحابه دوره تابعی مکه مدین عراق هر کس نمشه هم جورو نمشه بعدم گفتن تو مدینه لیدر فران تو عراق فران کسه دیگه یادیشون رفت در مدینه اولین جلبه تفسیر مال احرابیت و در عراق